گفتم با توجه به هجده آل عمران که دو هفته پیش خونده شد یا ایو الذین آمَنوا لا تتخذوا بتانا من دونکم گفتم با توجه به اون که نیاز به هوشیاری داریم و باید افراد را بشناسیم نیاز میشود در مورد بعضی افراد با دیگران صحبت کنیم آیا غیبت نمیشود؟ این زمان زمانه ناجوری که مردود داشته بودند ایده مسلمان بودند ایده منافق باطران بوتوراست خب اینا اگه می, می گفتن مسلمان شد می رفتن باشون میکردن اصراری بهش منتقلی میکردن خطر بود دیگه باشتن موازه باشین از اینا بتانه اون آدمایی که آدم توست باش باشی حرف های باطنی بهش می از اینا انتخاب نکنه ولی الان به هم این اینجوری سکمه شیعه متظاهری هنگی ملاکش تو چیزای ضعیفترم نیست مثلا غیر از بودن و نبودن حالا تو مسائل مثلا سیاسی برود اون دیگه از این اینه بگه چون مردم مختلطا مواظب باشه اشتباه نکنه چون اونا میمدن تو قسلونا نماز میخوندن مثل این رو میکردن که از اطلاعات سردی اینا باخبر بشن چیزایی که خطرناکه به کسی نگه اونورا چه مورد اعتمادن ببینین اونورا تجسس میکنن گاهی